خب بسم الله الرحمن الرحیم الدرس الرابع درس چهارم الاسم الاسمو یا انقسمو الى قسمین در درس قبلی تعریف اسم رو توضیح داد با علاینی که اسم دارد حالا به اعتباری اسم رو تقسیم بندی می کند الاسمو یا الى اسم تقسیم می شود به دو قسم موربین و مبنین یک مورب دو مبنی این خیلی سرنوشت ساز هست در نح که ما تشکیص بدیم اسمها آیا موربین یا به خاطر این آقا یه مدتی یک اسم مبنی رو حرکتش رو تغییر و نه نه و رو در حالتهای مختلف اعرابشونو با توجه به نقشی که دارن تغییر دهیم پس از ابتدای کتاب موقع میاد تعیین میکند مورب و مبنی یعنی این یه بحثیست بسیار مهم خلاصه اسم تقسیم میشود به دو قسم مورب و مبنی ابتدای کتاب در مورد مبنی سخن میگوید و است قسمت بعدی در رابطه با مبنی و نذکر احکامه فی بابین و ذکر میکنیم احکامش رو در دو باب الباب الاول في الاسم المعرب باب اول در رابطه با چیست؟ در رابطه با اسم معرب هست الاسم المعرب و فیه مقدمتون و ثلاثت مقاصد در بحث اول و باب اول که اسم مغرب هست ما یه مقدمه داریم و تا مقصد داریم و بعدش خاتمه بحث که بحث تمام می شود و تا فصل هم درش هست الفصل الاول بیاید روی بحث فصل اول الاسم المغرب اسم معرب الاسم المعرب هو كل اسم ركب مع غيره اسم معرب هر اسمی است که ترکیب شود با غیرش اسم معرب هر اسمی است که ترکیب شود با چه با غیرش ولا يشبه مبني و شبیه مبني اصل نباشد هلا منزور من مبني الأصل كيس آني منزور الحرف، حرف الحرف، يك حرف والفعل الماضي فعل ماضي والأمر الحاضر أمر حاضر. إن سك مبني الأصلان، إن سكتش؟ حرف فعل ماضي وأمر حاضر. نحو سعید فی جاء سعید مانند کلمه سعید ولی در جمله جاع سعید چرا به تنهایی نه به خاطر این که گفته بود هر اسمی که با غیر از خودش چه شده باشد ترکیب شده باشد یعنی به تنهایی نه پس نحو سعید فی جا سعید لا سعید وحده لا سعید تنها لعدم آدم ترکیب کل سید تنها مراکل نیست ترکیب نشده تنهاست آ مفروضه ولی هذا فی قام هذا و هم نه هذا یعنی هذا هم مورب نیست در مثال قام هذا چرا؟ لوجود شبیه بالحرف حرف هذا شبیه به چه شبیه به حرف، حاک حرف تنبیه هست ذا ذا شبیه چه شبیه به حرف هست دوتا حرف است. و یسما متمکنن و نامیده می شود معرب و نامیده می شود معرب متمکن چرا؟ لقبولهی التنوینه چون چرا قبول میکند تنوین را و حکمه حالا این همه توضیح داد تا میخواست حکمش رو بگه و حکمه حکم موربان است که ان یختلف آخره با اختلاف لفظا او تقدیرا و حکم موربان است که تغییر کند آخرش با توجه به اختلاف عوامل آمل که تغییر کرد آخر مورا هم چکار کار جا از زیدن اینجا چیست؟ چی شد؟ مرفو شد ام نزیدن عمل که متفاوت شد اعراب آخرش هم چیکار کرد؟ بله پس حکم مورا آن است. آخرش با توجه به اختلاف عامل چیکار کار تغییر میکند لفظاً مانند ام نزیدن جا از ایدون یا تقدیرن مانند جا اموسا این نموسا مررتو تو به موسا اینجا آخرش تقدیرن تغییر کرده پس موسا یک اسم مورب است تغییر نکرده اما تقدیرن چی شده است؟ آمین. که این بحثها ها در درس های خواهد آمد که چه کلماتی اعراب تقدیری دارند پس بدانیم که حکم موربان است که آخرش با تا اختلاف عامل یا لفظن مانند جانی زیدون و رعی تو زیدن مرر تو دیدید که آخر زید چه شد؟ تغییر کرد. اونجا که مرخوب بود؟ بله منصوب و مزیرون آخرش چی کرد؟ تغییر ولی لفظن یا تقدیرا نحو جانی فتن رعی فتن مررتو در حالت رفع نصب و می بینیم که لفظا تغییری درش پیش ولی در حالت رفعی میگویم فتن مرفو محلق چی؟ تقدیرن مرفو با تقدیر زمه جاانی فتن میگیم جا فعل ماضی مبلی بر فتح نون نون بقایه یا مفعول به فتن فائل مرفوب با تقدیر زمه یا مرفوب با زمه تقدیری رأیتو فتن فتن همچنین اینجا مفهول بهیز منصوب با منصوب با چی؟ فتح تقدیری و تو بفتن مجرور با کسره باید بله. چون اینها رو خواهیم خوند که چه زمانی و چه کلماتی اعرابشون است؟ و در چه از کلمه رو میبینید در حالت رف اعرابش تقدیری ولی در حالت نصر چه هست؟ که اینا رو انشاءالله در درس های بعدی خواهیم و اعراب حالا اعراب رو توزیده حالا که گفت آقا آخر اسم مورب آخر مورب تغییر میکند حالا دیگه اعراب رو هم تعریف میکند اعراب ما اختلیف یختلف آخر مبی آن است که به وسیله آن آخر معرب تغییر می کند آخر مبری نه چون آخر مبنی ثابته مانند هو قاائمون چه در حالت رفت؟ چه در حالت نسب؟ چه در حالت جر مبنی ها تغییر نمیم. نمیم. نمی کنند. و الاراب ما به یختلف آخر المعرب آن است که به وسیله آن آخر المعرب تغییر می کند اون حرکاتی که تنها حرکات نه چه بسا با حروف آن که آخر المعرب با آن تغییر می کند به اون چی گفته میشه؟ اعراب زیدن، زیدن، ایراب زیدن زیدن زیدن آنچه را که آخر مورد به وسیلان تغییر میکند بهش چی کفته می ممکن است حرکت باشد مانند زیدون زیدن زیده و ممکن است حرف باشد مانند جا المسلمون رئیت المسلمین مررت تو بل که با حروف آخرش تحقیب کردن پس ای است که با آن آخر مرت تغییر می کند مختلف می شد تضندی مانند ذمه والحتیسطحه فتح کثرتی کسره والواوی واب والیی یا والفی ال چرا سکون رو میآورد بخوایم که سکون مخصوص اسم ها اسم های نیست؟ اینجا بحث اسم داغل می کند و اعراب الاسم ثلاثت و انواع و اعراب اسم سلوه هست ما در کل چار اعراب داریم رفع جد، نسب جد، جر جزم اعراب ها چار تاستن اسم ستا داره فعل هم تا داره اسم رفع و نسب و جر داره و جزم نداره اسم هم عجزون نمیشن برعکسش ها نسب و انجام رفع و جزم دارن و جر ندارن یعنی فعلا مجرور نمیشن همان طور که اسمها ها مجزوم نمیشن نمیشن ولی کتاب جداگانه بحث میکنه یعنی اعراب اسم رو جدا بحث میکنه و اعراب فعل رو جدا پس اینجا فعلا اعراب اسم رو میکنیم و, و اعراب الاسم ثلاثه انواع اعراب اسم چند هست؟ است یک رفع دو نصب سه جزم وال عامل حالا مدمورن رو تعریف کرد اعرام رو تعریف کرد حالا عامل رو تعریف میکنه چون در تعریف در تعریف موارد گفتیم که با اختلاف عامل آخرش تغییر میکند حالا میگه عامل به چی چیزی گفته میشه والعامل ما یحصل به الرفع والنصب والجر عاملان است که حاصل می شود به وسیله آن رفت نصب و جر متوجه شدید؟ بله. آن است که با آن حاصل میشه رفع و نصب و جرد. یعنی عامل است که کلمه ای رو مرفوع میکنه یا منصوب یا مجرور یا مجزوم. متوجه شدید؟ پس آن آنچه که اعراب کلمات رو تغییر میده چه است؟ اعراب عامل هست. بعضی از عامل ها مرفوع میکنن، بعضی از عامل ها منصوب میکنن. بله. خب انه فالتوزيه داد ومحل الاعراب محل اعراب توزيه دائما محل اعراب كجاس وثا تكلمات آخر اش هاس اول اش هاس ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخر محل اعراب از اس حرف آخر هاس محل اعراب كجاس؟ آخر, آخر. آخر. نحو قرأ خالد خاند خالد خالد مرفوع علامت رفعش زمه هست حالا محل این زمه کجاست؟ آخر محل اعراب کجاست؟ آخر, آخر. بله پس اعراب همون تغییر است که در آخر کلمات میاد الان با توجه به آمین فا این نقرعه آمیلون تمام فعل ها تمام فیل های دنیا در عربی آمیل یعن حداقل ایناس کفایل دارن و فایلو مرفوم میکنن پس فایل به وسیله فیل مرفوش شده فیلو میگم چی؟ آمیل امیل فإن قرآ آمل فا این قراء آمل القراء آمل هست و خالد معمول معراب خالد معمول معراب هست و ضمة اعراب با این مثال میخواد تمام استلالاتو توضیح بده ضمة هست اعراب هس هست و حرف دال من خالد محل اعراب و حرف داره که در کلمه خالد اومده پس yeah. آخرین حرفش داره. و و بدان، انه لا معربه في کلام العرب، الا الاسم المتمكن والفعل الفعل المضارع. بدان که موردی در کلام عرب وجود ندارد، جز اسمهای های متمکن و فعل مضارع. فعل ماضی و فعل امر مورد نیستنونم مبنیا. فعل مزاره مورب هست. البته جز و ی جمعه مانس و وسیجیق حکمه فی القسم ثانی ان شاء الله تعالا و خا آمد حکم آن این حکم فعل در قسم دوم ان شاء الله در قسم دوم کتاب. خوب حالا بانی یا کافی؟